بعد جل فراجه هم دور آغامون شالله نهسته چیزیم خبر آمد خبر آمد خبری در راه سرخوش هم که از آن آزا شاید اینجوم اه ای بیاید شاید رویل این جمعه بیا یک هر دست شکر گشاوید ساق در تخت پوی خوبان می‌بدم آن در سلطون خوبان می‌بدم زباغ می بار دیگر مستم خنطی سر و بی‌تا و بی‌دستم کند که بام کسیش بیرون که بام در بیه لیلا روخی مجنون که هر که نشناست امام کیشنا هر که بسپارد زمان کیشنا که به تاویشون تر قمر وجود داد و همتی که آنجا نبود چه آوینه را اطلاع کرد بس جبالش را و چه او کیش را ایتاو کرد موج درف موت و آواز داد فرق آواز میگردد شعاف داد در بیه احمد الی آمد هدید بركف او بود میزان و هدید قلعجب بین روح حقا در دو جسم هر دو یک معنیبری کم در دو عسم در حقیقت هر دو یک ائینه اند یک زبان و یک دلو یک زینه اند یک نظر بر پرده نقاش كن ابگیسوی قلم را فاش کن، آفرین او پنجه معمار را تا نماید بر تو این اسرار را فاش میگوید بهما لوف قلم Would you get cho if that be should them that چاو ده حب ل فلج آوی خه چاو ده آویش فلج در باوسون چاو ده پرشیت هستی چاو سون چاو ده در باوسر هست چاوسی من کمان چاو ده در به جمال چاو دکتر چاو جمهور جوش چاو دکتر این در خروش. شاده جنجینه علم دگن شاده شنجینه بودا دا پن شاده در شاده در دین شاده تبسیر قرآن مبین شاده در شسته غر مست مسترو چر اینو شد باونه اشوره شاده شده بچه و باونه شده که منصور را اومده کل عمر او بر علو را اومده آثریش بر مدار عشق بود مصطفی او ایندار عشق بود می میو مرکز پرکار عشق بر تجلی بر سر باطور عشق تا قلم در خلقی شد بازی خروج سرفراوی را نویش یا دقیق عشق‌آزم را نگاه خلق دم بیششین یار او نداد دست تخت توخیش که دم را نهاد بر زبانش نام خاتم را نهاد نام احمد نام جمله‌ای از اومد نبت هم پیش از مناورد پنج نوبت پر خروش نام احمد باوت علي او جد روز شد کو جمد او باوت شدید یا محمد یا علی